بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بی اندازم تربان نهایت بارش حامیم عینسین قاف این چنین بسوی تو و بسوی کسانی پیش از تو خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت وحی می آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است نزدیک است ها، از بالایشان متلاشی شوند و فرشتگان پروردگار خود را تسبیح گویند و برای همه موجودات روی زمین آمرزش می خواهند. آگاه باش که خداوند هم اوست آمرزنده و بشار مهربان و کسانی که جز او موجودات دیگری را دوست میگیرند، خداوند بر ایشان مراقب می و تو بر ایشان سرفرست نیستی و به این ترتیب به سوی تو قرآن عربی را وحیه کردیم تا مردم شهر مکه و پیرامون آن را بیم دهی و ایشان را از روز قد که در آن شکی نیست بیم دهی از روزی که گروه بهشت اندرند و گروه هم در آتش سوزان اگر خداوند می خواست همه ایشان را امت واحد می گردانید. اما کسانی را که بخواهد شامل مرحمت خیش می سازد و ستمگاران نه برای ایشان کارسازی است و نه هم مددگاری آیا ایشان غیر از خدا برای خود کارسازی گرفتند؟ در حالی که خدا هم اوست کارساز و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر همه چیز قدرت دارد در هر امری که در آن اختلاف می از حکم آن به خدا تفویز می شود این است خداوند پروردگار من بر او توکل کرده و به سوی او رجوع کنم آفریننده ها و زمین است برای شما از خود شما های گردانی و نیز از چارپایان جفتهایی را قرار داد و بدین وسیله شما را فراگنده ساخت هیچ چیز و همانند او نیست و اوست شنوا و بینا کلید های آسمان ها و زمین از آن اوست روزی را به هر کسی که بخواهد گشاده یا تنگ می سازد حقا که او به هر چیز داراست برای شما اعضاین همان چیز را مشروع ساخت که نوح را به آن سفارش کرده بود و همون چیزی را که به تو وحیه کردیم و آنچه را که به ابراهیم موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا دارید و در آن اختلاف نورزید بر مشرکان این امری که به سوی آن ایشان را دعوت می کنی گران تمام می شود خداوند هرکی را بخواهد به سوی خود بر می گذیند و هر کی را که به وی رجوع کند رهیافت می گرداند و اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان علم حاصل شد آن هم از روی حساستی که در میان خویش داشتند و اگر حکم نمی بود که از طرف پروردگار تو از پیش صادر شده بود مبنی بر که تا زمان معین به ایشان مهلت داده شود یقینا در میان ایشان فیصله میشد و بیگمان کسانی که کتاب را بعد از ایشان میراث گرفتهاند در مورد آن در شک تردید تردیداندودی می باشد و از این رو ایشان را به دین اسلام فراخوان به با همان گناهی که معمور شدی استقامت کن و از هوا و حواس های ایشان پیروی مکن بلک بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده ایمان دارم و معمور شده ام تا در میان شما عدالت وزم خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شما یعنی هر کدام ما و شما از نتیجه اعمال خیش برخوردار می در درمیان ما و شما حجت مورد نیاز نیست خداوند بین ما جمع می کند و به سوی اوست بازگشت کسانی که در مورد خدا بعد از آنکه دعوت او اجابت شده است مجادله می کنند دلائل آنها نزد پروردگارشان باطل و بیاساس است مورد خشم خدا واکی می شوند و برایشان عذاب شدید است خداست که کتاب را به حق نازل کرد و نیز ترازو را و چه خبر داری شاید قیامت نزدیک باشد کسانی با شتاب به جستجوی آمدن قیامت می که به آن ایمان ندارند ولی کسانی که به آن ایمان دارند از آن می و می که آن حق است آگاه باش آنانی که در مورد قیامت مجادله می کنند بینهایت گمراه هستند خداوند بر بندگان خود لطف است و به هر که خواهد روزی می دهد و او توانا و صاحب قدرت منی است برای هر کسی که کشت آخرت را بخواهد برای او در کشت او می و برای هر کسی که کشت این دنیا را بخواهد از آن برایش میدهیم ولی در آخرت نصیب ندارد آیا برای ایشان شبیکان است؟ یعنی به خدا کسانی را شریک می آورند که از دین برایشان چیزی را مشروع میگردانند که خداوند به آن اجازه نداده است و اگر حکم قاطع مبنی بر محلتی آفتنی این کافران نمی بود حتما در میانشان حکم صادر می شد برای ستمگاران عذابی دردناک است ستمگاران را به اساس اعمالی که متکب شده اند در حراس می بینید. و این مجازات به ایشان واقعی شده نیست ولی آنان که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند در باغهای بهشتند و با ایشان از نزد پروردگارشان هر چیزی که بخواهند میسر است این از تومان فضلی بزرگ و این است تومان چیزی که خداوند آن بندگانش را که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند مجده می دهد. بگو من برای این رسالت خیش از شما جز دوستی و بستگان مزدی نمی طلبم. اگر کسی نیکی ورزد ما در آن برای او به نیکی می افزاییم حقا که خداوند آمرزنده و پاداش است آیا می گویند بر, بر خداوند به دروغ احترایی کرده است اگر خداوند بخواهد بر دل تو مهر می نهد خداوند به وسیله وحی کلمات خیش باطل را نابود می کند و حق را ثبات می بخشد حقا که وی به نهانخانۀ سینهها داناست و اوست که توبه را از بندگانش می پذیرد و از گناهان در بگذرد و آنچه را انجام می دهید می داند دعای مؤمنان نیکو را اجابت می کند و از فضل خیش با آنها زیاد می کند و کافران برای ایشان عذاب شدی است اگر خداوند روزی را برای بندگان خود فراخ می کرد البته در زمین سرکش می کردند ولیکن خداوند به ای که بخواهد روزی هر کس را نازل می گرداند. که او به حال بندگان خود آگاه و بیناست. اوست که باران را بعد از اینکه بندگان او ناامید شدند نازل می کند. و مرحمت خود را به همه جا پراگندنی سازد و اوست که ساز و ستوده. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و نیز آنچه از جن بندگان در آنها پراگنده ساخته است و هنگامی که بخواهد می تواند همه آنها را گرد آورد. هر مصیبتی که با شما برسد از سبب اعمالی است که خود انجام داده و خداوند از بسیاری گناهان می بزاد. شما هرگز در زمین اراده خدا را عاجز ساخته نمی توانید و نمی توانید از سرنوشت خیش فرار کنید و شما را جز خدا ساز و مددگاری نیست و از نشانه او کشتی هاییست چون کوه‌ها که در دریا حرکت دارند اگر خواهد باز را استاده می کند یعنی از جیریان باز می دارد پس مردمی که بر کشتی سوارند روی آب باکی می مانند بیگمان بگماندر اینها برای هر سبر کننده ای شکر گذاری نیشانه است یا آنها را به سبب آنچه کردند حلاک می کند و از بسیاری از گناهان در تا آنانی که در مورد آیات ما مجادله می کنند بدانند که برایشان راه و چاره ای نیست به شما از چیزی که دادش کرده، صرف متای زندگی دنیاست و آنچه در نظر خداست بهتر و ماندگارتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگار خود توکل می وزند و آنانی که از گناهان کدیره و فخشا اجتناب می وزن. در هنگامی که خشمدین می شوند از لغزش دیگران در می بزن. و آنانی که امر پروزگارشان را اجابت کرده اند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و کارشان در نیانشان به اساس مشوره است و از آنچه روزی روزیشان گردانیدیم در راههای خیر خرج می کند. آنانی که چون بر ایشان تعدی شود بر آن غلبه حاصل می کند. و سزای بدی بدیست مثل آن. اما اگر کسی عفو کند و اصلاح نماید پس مزد او بر خداست. بیگمان خداوند ستمگاران را دوست ندارد. کسانی که بعد از مظلوم شدن غالب گردیدند، بر ملامتی ایشان هیچ راهی نیست واقعا ملامتی بر است که بر مردم ستم و در زمین بناحق سرکشی می کنند اینهایان که برای ایشان عصابی در ناکیست و برای کسی که صبر کند و عفو نماید بگمان این رویه از امور شایست و استوار است هر که را خداوند گمراه کند بعد از این برای او کارسازی نیست و ستمگاران چون عذاب را بیبینند میبینی که میگوین آیا راهی به بازگشت هست؟ و ایشان را میبینی که به عذاب پیش کرده میشوند در حالی که از خوری بسیار فروتن میباشند و با نگاه می میبینند مؤمنان گفتند بیگمان زیانکاران کسانی اند که هم خود و هم خانواده خیش را در روز رستاخیز زیان من ساختم آگاه باش که واقعا ستمگاران در عذاب همیشگی است هم. برای ایشان کارسازی نیست که ایشان را کمک کند جز خداوند و هر کی را خداوند گمراه سازد پس برای او راهی برای نجات وجود ندارد امر پروردگار خود را اجابت کنید پیش از اینکه که روز فرار که برای آن از عذاب خداوند بازگشتی نباشد در آن روز نپناهگاهی دارید و نه هم احکاری می توانید پس اگر روی برتابند ما تو را به حیث نگهبانشان نفرستادیم بر تو جز رساندن پیام نیست چون انسان را از جانب خیش از می میچشانیم مباعات میکند اما اگر با او در اثر اعمالی که خود انجام داده مصیبتی برسد بیگمان انسان بر ناسپاسی میپردازند بادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست هر را بخواهد میافریند هر کی بخواهد دختر میبخشد و به هر کی بخواهد پسر میبخشد یا به ایشان به گونه جوره دختر و پسر میبخشد و هرکی را بخواهد عطیم میگرداند حقا که او دانا و تواناست برای هیچ بشر توان آن نیست که خدا با او سخن بگوید جز از طریق الهام یا از ورای پرده یا خیام آوری را بفرسته است که به اجازه وی هرچی را بخواهد وحی کند بگمان او برتر و با حکمت است و بدین ترتیب روح یعنی قرآن را از امر خیش به تو وحی کردیم در آن وقتی که هنوز نمی که کتاب چیست و ایمان چی می باشد مگر قرآن را همچون نوری گردانیدیم که هر را از بندگان خود بخواهیم به وصیله آن رهیاب می سازیم و حقا که تو راه راست هدایت می کنیم راه خدایی که هر آنچه در آسمانها و در زمین است از آن اوست آگاه باش که هم امور به خداوند باز بیگردد